<تصفيق> بسم الله الرحمن الرحیم سلام و درود خدمت دوستان عزیز این جلسه سواروم مستنی خانی ماست و به همون نقشه قرار داشتیم اول فرستی از نکاتی که سال سه گذشته مطرح شد مرود میکنیم چه ذهنمون آماده بشه برای تعریب مطالب. در هفته گذشته، راجه به بیت اول مصطبی صحبت کردیم و چند نشته انزا بیان شد اول نشته خیلی مهم سنت شکنی مولاناست مولانای سنت شکن این سنت ششنی در درجه اول بسم الله الرحمن الرحیم در اول در آغاز کار ما یه آدمی رو میبینیم چه هیچ بر سبیل دیگران که چتاب می نوشتن چتابش رو اینجوری شروع نمیکنه ما میدونیم که نه تنها معلفین معلفینی چه خود مولانا قرار بود از اونها به پیروی پیرویی بکنه چون گفته شد چه مصنوی به درخواست حسام الدین سروده شده و او دو چیز گفته اونجا بسلا دو, دو, دو, دو, دو, دو نشته نشترم تره شد اونجا چی گفته که مثل کتاب شیوه؟ سنائی باشه در الهی نامه یعنی در حدیقت الحقیقه و, و دوم اینکه به وزن منطقه و مصیبت نامه عطار باشه خب این سه تیتابی چونزای سپردن در دست ماست و ما میبینیم اینا چه دوری شروع شده اینا شروع میشه با شرح خیلی مفصلی در حمد خدا و بسم الله و نم یه دوره سورددین رو نم نه پیغمبر بعد منگبت خلافه های راشدین و حتی گاهی میاد به وضعی ها چه به خاندان نبوت علاقه بیشتری میخواستن میشون بدن رو به امام حسن و امام حسین هم چیزهای اونجا هست و بعد از این چه این مطالب گفته میشه تازه میپردازم به این چه این من چی هستم و این چطاب را چرا مینویسم و برای چی مینویسم و برای چی مینویسم معمولا اینا بود دیگه برای چی مینویسم و برای چی مینویسم اینا میگفتن اونجا بیان شده این حتی در نامه های خصوصی هم بدون مقدمه نامه خصوصی هیچ واسو نمیکردن نامه خصوصی هم با حمد و صلوات و هم درم درود و هم در چهو تو و اینا شروع میشه و بعد سنت بود مولانای سنت چه چن این شش دفتر مستبی رو داره شروع میکنه اصلا بدون حمدله بدون بسم الله بدون این که اصلا به این مطالب بپردازه این یه رولتی اسیان یه است در مقابل سنت چه از مولانا می بینیم دومن نشتهی که ما در مولانا می بینیم نواوری است این چه سنت شچنی می کنه به جای خود ولی چی میاری نوآوری؟ <coughs> ممکنه کسی سنتی چشنی بکنه راه رسم دیگران رو نره ولی خوب باز در همون به از روال گذشتگان استفاده بکنه متاها نه اون شیوهی چونها پیشنهاد کردند اون را دنبال کردند بلکه یه شیوهی دیگری در پیش بگیره نه اصلا به کلی مولانا در کارهاش اولا سرزده است قوフィルی همینجوری راه رسیده بعد شما ببینید که نوآوریش از زبان نی ششواغی نه ما خود در کجا هیچ وسلوصن نششانی بذای خود ولی این نوآوری که با زبان نی این شش دفتر مثلی با ششواغی نی شروع میشه ما نداریم اینجوری این یه نوآوری به لحاظ فنی طالبی <تصاف> نش... نشته دیگری که عرض شد خدمتتون این بود که در این 18 بیت اولی که مولانا اینا را قبلن سروده بود و وقتی حسابتیم پیشنهاد کرده و این بحث را پیش آورده مولانا گفته تصادفا منم تو همین اوالم فش می شدم یه چیزایی هم نوشتم این دست برده از پیچ آمش۱ بیت رو در آورده و اینا را خونده که اگر دوست داری بر همین روار ما دنبال می و سامتینم خو خیلی شایق شده. ما اون ۱ رو در این کار تسیج انجام دادیم دقت کردیم، در اون نسخه که گفتم که اساس کار ما بوده در گلده سار اول بعد از وفات مولانا نوشته شده یعنی در مدبات من تشار میکنم این حرف رو. یعنی در مدتی که مصنوی صاحب داره یعنی حسام الدین زنده است و سلطان ولد زنده است و اصحاب چه بار مولانا اونایت با مولانا خیلی نزدیک بودند اینا زنده هستند و موجود هستند و تحت اشراف اینها تحت نظر اینها نصه ها نوشته میشه و نصه ها در اون نصه ها تجار میشه تأچید میشه چه این از روی نسخه ای که برشیخ خامنده شده و مورد تصحیف و تصویب او قرار گرفته من دارم مینویسم چه با این وضع احوال نمیتونه این درو باشه چون هم چیزی نیست که مصنوی یه سازمانی یه چیزی هست اونجا چه سامدین هم مودی اصلیه دیر مصنوی هنوز زنده است، بنابراین این چه در اون نصحه هایی که مورد نظر ماست کسی دست برده باشه ما این را منتفی میدونیم اقلا منتفی میدونیم فش میکنیم چه این چیزی ممکن نبوده حالا به جای خودش این بحث ها در جای خودش مطرح شده در مقدمه تصحیحی که انشاءالله چاپ میشه اگر تاپ شد ملاحظه هر ترمود در این 18 بیت ما هیچ واریانتی هیچ نسخه بدنی نداریم چرا برای اینکه اینا رو خود مولانا قبلاً کار شده، مد تسبیت شده آمده به یک متن تسبیت شده را آبود وزشته رو میسه. اونهای دیگر بعد از این دنباله این مطالبیش چه مولانا صبح ها کار روزها کار میچرده کار مسنوی میچرده تو مسنوی دیجه به قول امروزی ها گفتم فول تایم زاب شده برای مولانا شب روزش مثلویه مثلوی تمام آقات مولانا رو جرفته مثلوی شب روز مولانا مشغول بوده به این یادداشتاش می کرده شبها مسامده می به مسامده دیشته می کرده اون چیزی را روزها یادداشت شده خب در یک چیزی البته امکان تغییرات امکان واریانت ها وجود داره یعنی وقتی این مولانا خودش دشته میکنه کنه اشتباه می اشتباه تلفزی هست طرف اشتباه می طرف درست می شنوه در نویشتن اشتباه میکنه، به ببین تمام این چی مشکلاتی که در این این غیر از اینه که چه چیزی چیزی بهش نه و خودش جرح و تعدیل بکنه یک مترک نهایی رو خودش مد ویرو به جای این متن این این جوری نیست که شما بینید که از این حزب که میذاریم واریانت ها شروع میشه نشته دیگری که مطرح کردیم این بود این چند بیت مشهور به نینامه در واقع شکایت نامه نی نی داره شکایت میکنه از چه شکایت میکنه؟ از جدایی ها شکایت میکند شکایت نیر و مولانا توضیح می ده چه این شکایت شکایت جداییست و, شکا و حدیث قصه حکایت و جدایی ها حکایت می کند حکایت قصه باد در این بار صحبت خواهیم جد این حکایت حکایت عشقه حکایت عشق و و این مسئله خدمت شد چه در بعدی تا سیتار بیت های بعدی مصنوی تا سیر سهار بیت سهار پیش از حکایت اون زرجر این ادامه داره و بعد هم خود مصنوی تا آخر من البدویل خب حدیث اشکه مصنوی اشکنامه است چطاب اشکه و اشک را خدمتون ارشدیم که مشابهتی که بین آغاز مصنوی هست و آغاز مقالات شمس هست و این اونجا هم به این صورت شروع میکنه و اشک را او به این صورت مطرح میکنه چه تو موجود حادث تو راه قدیم نداری تو اون چه, چه میتونی ارائه بکنی اون چه میتونی از خودت اظهار بکنی اظهار نیازه و وقتی تا اظهار نیاز شدی از قدیم چیزی به تو می پیوندد و اون عشق و اون رابطه بین حادث و قدیم چیزی که چی حادث را به قدیم می پیوندد و حادث خودش رو در او میپیچد پیچد تا از این ساه طبیعت بتونه بالا بره خب این مسئله عشق به این صورت چه ارچردم لتوپار و ناگس و معیوب و مفلوچ به این صورت نیست خیلی حدیث شکوه مندیه و بحث همزور ادامه خواهد داشت مولانا بعد از این چند بیت بعد از اون ده بیت اول ششوایه نی چند بیت دیگر در مثنوی آورده در دنباله همون حرف ها چه در واقع این یک قصیده است در منگبت عشق، قصیده است در منگبت عشق و در این قصیده او در ستایش عشک به چهار جنبه از اشک پس چه میکنه؟ کنه یکی عشق آزادی بخشه باش آزادی پسر چند باشی بند سیمو بند زر عشق آزادی بخش عشق تحضیب جره هرچی را زامن از اشکی تا شد او زهر و عیب کلی پاچ شد اش تهذیب جره پالایش جره اش شفا بخشه ای دوای نخوت و ناموس ما ای تو افلاتون و زالینوس ما ای دوای زمله علتهای ما دوای همه دردها یک شفا بخشه و اشک میرادگره عشق اش وسیله ارتقای انسان به عوالم بالا جسم خاک از عشق بر افلاق شد معراج ایسا کوخ در رقص آمد و تالات شد یا اون چیزهایی که جمعه است هست عشق است بر... خدمتون خوندم بعضی از این بیت ها رو عشق است بر آسمان پریدن ماز فلش ما به فلش می, می رویم ار... تماشا چرا چی چی گست تماشا چراست؟ ما به فلش می رویم مسئله معراض مسئله کشیدن بالا به عوالم بالوتر این چهار نشته را در عشق این در همین چند بیت به دنباله اون شکایت نی مولانا مطرح می کنه. بعد نشتهی چه می اینه چه عشق با این چه یه چه رابطه دو طرفیه ولی در واقع همش بسته از به گوشه چشمی از معشوق گوشه چشمی از معشوق نباشد اصلا سر نمیگیره و اینی که اون انایت،, انایت باید از اون طرف باشه و جرنه جرنه باشد اشک را پروای او او چه مرگی بی پر وای او اون چه گوشه چشمی از سوی معشوق بروش نباشه به جایی نخواه رسید و باز مطلبی چه آخر نشتهی چه مولونا مثلا میکنه اینه که در این راه در سیر طریق عشق اعتماد بر روشنگری از اون ببینید وقتی میجه که شا نباشد نور یارم پیش و پس میگه من این راه را نمیتونم برم ببینیم آیه گآن چی شد ی آن نور هم بین عیدی هم من خریم. نور از پس و پیش راه را روشن میکنه بین. میشه که من اگر این نور روشنجر یارم نباشه من این راه را، این نکاتیش در این چند بیت کوتاه در منگبت مولانا میگه جه تا خودش رو برسونه به مسئله بعدی که از خواهم چند موضوع بحث امروزمون خواهد بود امروزمون یه چند نشته باز در راجع به خیلی دلتون نجیره که ما در مقدمات اینگرد مثلا تحمل میکنیم و وقت صرف میکنیم برای اینکه خدمتون از شد این مقدمات مهمه و این مقدمات به این صورت مطرح نشده مقدماتی مطرح شده چه گمراه کننده است شما مرایجه این فرمایید که گفتم خدمتتون اون خارزمی وقتی خواسته شرح مصنعی بنویسه چه سه دفتر را شرح کرده ولی پیش از اون چه اون سه دفتر را شروع بکنه یک کتاب مفصل را دیگه مقدمه در ده فصل چه مقدمه اینویشه چه این مطالب تا اینا را نفهمید وارد مسلی نمیتونی بشید شما فقط این نیست شما ببینید که مثلا خود همون در زمان خود مولانا ابن عربی ابن عربی اون کتاب فسوسش رو چه نوشته کتاب فسوس کتاب مختصره خیلی مختصره اون کتاب مختصر خودش مقدمه ای داره و اون مقدمه رو شاره فرض کنید جندیچه از رده اول شارهین فسوطه وقتی همزبان بوده با قصر مولانا بوده و این وقتی می این را شرحی که بر مقدمه یک یه چفتم کل کتابه یعنی این مسئله چه پیش از شروع در مطلب یه تیجایی بجه من تا ما با شمال تعذب ملاحظه می کنیم تمام تمام مقدمهایی هیچ اونا گفتن گمراه کننده است در خانه در خانش گمراه کننده است به جای خود حرفهای خوبی هستن درستی هستند شایدم درستم من نمیدونم ولی برحال کمکی به حل مطالب مصنوی رب ربتی به آلم مصنوی نداره حرف هایی میزنند عجیب غریب شما در شر مصنوی انگروی شر مصنوی بهلو شر مصنوی هایی چه اینه آماشاالله نشدند از حاجی سبزباری تا زمان معاصر ما چه البته انگتایی حاصل شده از زمان معاصر ما اون چیزه شیوهقددما چه در هندوستان و ایران و توشیه اون شیوه رو دنبال می پیش از شرح مطبی اون مطالب را م می کردن مثلین چهالیه شده ولی خب جاش جای چیزی باید باشه. جایش تحقیقات درست حسابی باید جای اون حرفها رو بگیر اون حرف های پر از توهمات پر از گمرایی هاست حالا از نشته که در آغاز کار ما بش اشاره داریم و یکی از شواهد نو های مولانات یکی اسم کتاب مصنوی ما چتاب نداریم که مصنوی یه نو شعره دو بیتی رمایی قصیده ولی یکیه مثنویه قطعه مثنوی یکی از اکس ها این خودش یک نواوری یک چسی بلند میشه و شش شه و چش دفتر چتاب می نهی چس می شه چی نظر مولانا وقتی ما کافی می بینیم این مولانایی که این همه اصرا داره در این چه چطاب من این قرآنه این قرآنه رد اونجا هست اینجا هست ما میبینیم که این اسم در قرآنم میاد در قرآن مسانی به قرآن مسانی اطلاق شدید در دو جای قرآن در دو جای قرآن از جمله اسامی قرآن یکه مسانی <تصفيق> سبا من المثانی <تطبعاً متشاباً متشباً متشباً> متشبا> متشباً و قرآن شریف چتابا متشابا مثانی تقشه اجرامی زلود الازین آمنون مثانی مثانی دوگانه دوگانه مثنوی هم دوگانه هست مثنوی دوگان شعرت یعنی چه مثنوی عبیاته بیس پنج 600 بیت هر بیتش دو لنجه داره هر لنجهش جداست ولی هر لنجهش به وسیله یک گافیه همسان به همدیجر بسته است ببینید این دوگانجی که در این حال که دو چیز جدا هستن دو چیز بسته به هم هستن این در بیس و بیت مصنوی به این جوریه خب وقتی ما دقت میکنیم میبینیم که برداشت مولانا در خصوص دوگانجی و دوگونجی خسلت آفرینش خیلی جالبه ما میبینیم مولانا این یکی از اصول مجرش های مولانا است چه در هر چیز این دوگانجی و دوگونجی را متجلی میبینه این را خیلی به تفصیل بحث خواهیم جد بعدها تمام اجزای کارخانه عظیم آفرینش این خصلت دوگانجی و دوگونجی درش تسری داره در همین سیتار بیت اول هم مولانا اشاراتی داره به این مطلب شما میبینید ی نی حریف هرچه از یاری برید پرده پردههای مادرید دارید یاری و مشتاقی جدید دید یار حریف حاضره و اون یکی قایبه اون از هجران می نالد این در این وصلی در, در چیجه همتونه زهری و تریابی چه دید دوگانجی ها این دوگانجی در این حال به هم مربوط بودند. و این یک چیده غریبی است که ما متفچرین اون اصر را از جمله خود ابن عربی را میبینیم که سخت جرفتار این موضوع هستند این دوگانجی و دوگونجی در عالم آفرینش در تمام اجزای آفرینش ما رو میبینیم در این حال میبینیم که اینا با هم با هم و در یک بستر این میرند و این آفرینش در این بستری از دو ها و دوگوونه ها بستری از ازداد و بحث خیلی مفصل است که بعدها در مید ئله دنبال خواهد شد مثالش پنهانی و پیدا ندیدم تو پیدا نهانی پیدا تمام این, این. <تصفح> مثلی دیگری که امروز میخوام من توجه دوستان را جلب بکنم بر این که مولانا دو جنبه داره یه جنبه شاعرانگی مولاناست مولانا جنبه شاعرانجیش خیلی چند توجه شده بیش مولانا در گله گاف شعر فارسی قرار داره تازه این پجوهیش های جدید پرداختند به این نکات و ذرایف و پیتیدجی ها و رموز این شاعرانجی مولانا مطالب خیلی تازه و خیلی قشنگ مخصوصا با توجه به میارهای نقد ادبی، مدرن، چشم می کنند در مستر اینها را مطرح می کنند از این لحات خیلی ظالبه خیلی خوبه و از این لحات من خیلی این را مبارک میدونن به شرط اینکه مولانا را تقلیل ندهیم به فقط به شاعرانجی یاد من نرهک مولانا همون طوی در گله قاف شعر قرار داره مولانا در عج آسمان عرفان هم هست گاهی ما فقط به اون زنبه عرفان مولانا توجه میکنیم و خیلی چند محلی بروز میدیم در مورد شعر مولانا ها مولانا شعر مولانا را چزی به مانش آقای ولی گاهی این را دیجه افراد می‌کنیم و من فج میکنم که هر دو قسمت را ما باید خیلی وقتی مولانا از عشق میگوید زیبایی خینه کننده تصاویری که ترسیم میکنه واقعا نفس آدم رو بند میاره اصلا فوق است شایرانش... شایرانجی مولانا به زادوگرین از میشه عشقش دل پردرد را برچف نهد دو می شما ببینید اصلا این همه شما شعر فارسی دارید از رودتی بزیرید بخونید بخونید بخونید تا ببینید آخی چی چه دوری این شعر اوگ شعره فوق گلاده اصلا عشقش دل پر درد را برچف نهد بو می کند. چون خوش نباشد اون دلی کوه است دستنبوی او وقتی مولانا میجه جن... این رو دکتت بکنید با... یعنی از نظر, شعر نگاه ب... از نظر شعری نگاه بکنید اونایی که اینجا هستند و در این میدان در مزبار شعر و کار شدند اونا توجه داشته باشند دارند به میکنم. ببین زقد پرخم من در راه عشق ببین تمام اون ایماج ها تمام تصاویر اصلا است. زقد پرخم من در راه عشق برا چشم من پل می توان ز عشق خون همچون اطلس من ز عشق خون همچون اطلس من براغ عشق را زین می توان شد تمثیلات اصلا فوق استعاره ها بمی اصلا چیه زهر هر از اون زلفین پربند پی جردنششان غل میتوان شد یادتون باش گافیه فوق داده سخته غل پر گافیه فوق سخته ولی ببین اصلا شعر این شکوه این شعر رو ببینید تو در یایی و من یک قطره ای جان ولا چند را کل می توان شد تو گاف من لام لبتلخ ز گاف و لام ما گل می توان شاد. گل چه شروع خلگه دا گل ز گاف تو گاف قندی و من لام لب تلخ استعاره ها رو ببینید هیچ سابقه نداره هیچ سابقه نداره شما ببینید تمام دواوین و شعرو دست شما به هم بزنید هیچ ثابته نداره تو گاف قندی و من زی زی لام لب تلخ چه قندو چه گاف و می ما گل می تونجان رهید درستو زان من پیاده ولی دل را تو دلدل میتوانشد خمش کن زن چه بی گفته زبانی جهان پربانج و غلغل میتوانشد خمش کن زن چه بی گفته زبانی جهان پربانج و غلغل کرد. من نمیخوام این چیزها رو زیاد براتون ولی نخونم نمیشه چون اصلا گرز اینه که شما خودتون توجه بکنید خودتون در خونه اینا را بخونید تعمل بکنید ای بابا ای خب این بلاغت این شکوه شعر که در عالم زیبا شناسی شما ببینید اینگر بدی است و اینگر رنجین است و اینگر آهنجین است اینگر جذابه این شما در اون قسمت ارفانیشم در اون بخش ارفانیشم در اون نجرش ارفانیشم اینان همین رو بینید حکمت حق در قضا و در قدر چرده ما را آشگانه همده جر این زهانبینی را ببینید عشقی چه مولانا میجه همین اشکی چه خیلی وسعت میده این اشکی را چه مومش در افواه گفته میشه اشک دیجه این هست این هست درش حرفی نیست ولی اینو چه وسعت بیچران میده بین حکمت حق در قضا و در قدر کرده ما را آشگان همدگر جمله از زای جهان زن حکم پیش یعنی اون حکم ازالی حکم پیش حکم ازالی جمله از جهان زن حکم پیش جفت جفت و جفت خیش همون مسئله دگونجی، جفتی، مسنوی، مسانی جفته با جفت، جفت، دگون، دوتا، دوتا جمله از جهان زون حکم پیش جفت، جفت، آشگانه، جفت خیش هست هر جزویز آلم جفت خواه راست همچون چهرباب و برج آسمان مرد و زمین زن در خرد یعنی در چشم خرد در چشم خرد نگاه کنی آسمان مرد و زمین زن در خرد هرچون انداخت این می پرورد آفتاب و ماه و گاو خراص. خراس گرد می گردند و می دارند تاس. اختران هم خانه خانه می دوند هر سعد و نهزی می شوند در نگون زد در گفت و شنید عشق در یاییست گرش ناپدید هرچه گویم عشق شرح و بیان چون به عشقایم خدل باشم از آن جرچه تفسیر زبان روشنگر است لیش اشک بی زبان روشن تر است عقل در شرحش تو خرد در جل بخوفت شرح عشق و آشبی هم عشق گفت اون بیتی دفعه گذاشته هم خوندم. از اون گذل فوقلاده ناوه فوقلاده پشکوه مولانا اون بیتش شاخبیتش شا... ابرها آبستن از دریای عشق این بینی، ابرها آبستن از دریای عشق ما ز عبر عشق هم آبستنیم خب ما این بحث را دیگه بیشتر از این تبصیل نمیدیم برای اینکه همین قدر نظر شما جلب بشه به این نشته ها و خودتون در خوندن مصنوی در خوندن آثار مولانا این این جریان را پی بگیرید این نشته را در نظر داشته باشید پایید دید چه چیزایی چشم میشه برای شما چه عوالم تازهی در مصنوی شما میبینید چه مصنوی رو وقتی این نکات را توجه ندارید مصنوی برای اون معنی،, معنی،, معنی رو نداره مولانا در فیمافی عشق را با نیاز و حاجت حاجت هم میجوند گاهی با میل شدید خار خاری در دل اگر تو باشه در شمس اون دفعه خوندیم چه چیزی چی تو داری میتونی بدی نیازه نیاز مولانا همین عشق رو همون نیاز میدونه البته نه به این سادجیش عرض میکنم چون خود مسئله در زمان مولانا هم در وقتی حرف میزد چه اینجوری نبود که همه گوش بکنن و دست بزنند در مولانا در اون زمان بوده چه این بحث های چلامی و این حرف های لیمه مدرسه خوب خیلی رایج بوده دیگه وقتی مولانا میگوید در،, در مولانا غالبا به اینها جواب های جدلی میده به جایی نمیرسیم بحث, ها، بحث های اصلی بحث های انحرافیه. بحث هایی به جایی نمیشه بیدم آقای بعد در فیر مافیر ما میبینیم ما ایراد جرفتن چه آقا خب شما میگویید که عشق عشق بی صورت نمیشه عشق بودت و توجه پس این چه زوری میشه آلا؟ عشق خداوند چش رو میشه این چه صورتی نیست عشق بدون صورت نمیشه و مولانا جواب میده بحث ها دست یعنی بحث های مدرسی ها بحث های چه مولانا فشل نبخوایی مولانا در یه دیگری حرف میزنه خب گرفتار همین همین بحث های نگریش ها بوده میده چه خیلی میده چه مولانا خیلی از من تصادفه اون فیم و فیخ رو دیروز داشتم نگاه می چهدم ظالب بود برام چیه صورت فر عشق آمد چه بی عشق این صورت را قدر نبود فر آن باشد که بی است نتواند بودن پس الله را صورت نگوین چون صورت فر باشد و او را فر نتوان گفتن گفت چه عشق نیست بی صورت متصور نیست طرف آخوی عشق بدون صورت <تص> و منعقد نیست منعقد نمیشه من. پس فرع صورت باشد گویم چرا عشق متصور نیست بی صورت بلکه, انجیز... بلکه انجیز... انجیزنده صورت است، خالق صورت هست میگه ست هزار صورت از عشق انجیخته می شود هم نمثل هم حقیق اجنگ نقش بی نبود هم جواب های جدنی ها چه نقش بینکاش نبود و نقاش بینکش نبود لاچه نقش فر بود و نقاش اصل چه هر چطل اسبعیم و خاتم انگشتت را هرچت میدی، انگوشتری هم، هرچت میکنه تا اشک خ... حالا این مثال را ببین مثال که چقدر ظالمه که مورانه اشک چی میخواده میگه تا عشق خانه نبود، هیچ مهندس صورت و تصویر خانه نچشد هیچ مهندس صورت و تصویر خانه نکند و همچنین گندم سالی به نرخ زر است و سالی به نرخ خاچ این ارذل تگذارای بازار را جلوه از جلوه های عشق میبینه بازار جرم شد بورس بالا رفت همه از فرام میگه از مظاهر که هر حرکتی که در آفرینش شما میبینید میگه این از مظاهر عشقی عشق خانه نبوتید مندس صورت و تصویر خانه نکند و همچنین جندم سالی به نرخ زر است و سالی به نرخ و صورت جندم همان است پس قدر و قیمت جندم به عشق آمد این مطاب چقدر مرغوبه درجه مرغوبیت این هست چه این را مهمه ببین همچنین حالا فقط در کاله های بازاری کاله های قابل نمیمونه های هنری را میگه. همچنین اون هنر چه تو طالب و عاشق آن باشی پیش تو اون قدر دارد و در دوری چه هنری را طالب نباشد هیچ اون هنر را نیاموزند و نورزند فرد بفرمایی که فلان مثلا تابلوی چی میجره از ای... چه دو خط خط خ... اسموان یادم رفت از این با خط خط میده که یا مثلا تاب... تابلوی فرد باشی تابلوی کوبیستی. یک دوره این مرغوب میشه این را می و خیلی قیمت بولون در یک دوره این از تشم میفته و دوره از قیمتش میاد پایین بنابراین این قیمت میده به این اون عشق اون مرغوبیته مرغوبیت و داغ بودن بازار یا سرد بودن بازار یکی از مظاهر عشقه و این همون اشت که در مظاهر مختلفش و در مجاری مختلفش کارگاه عظیم آفرینش را میترخاند ببین نظر مقلون حالا این هم یه مسئله ای بود که خواستم نظرتون رو زلب بکنم در خانه مصنوی خیلی مهم خواهد بود میرسیم به اونزایی که این سیتار بیت را چه ما اینقدر درزا زدیم روز و هنوز تک تک اینا رو نخوندیم و نمیخواهم بخونم بخونم باز از این حرف خیلی زیاد در خواهد آمد این نشته ها و ولی یک قدم جلوتر بذاریم اونجایی که ببینید سیو به تمام میشه و میرسیم به اولین عنوان در مصنبی، آشق شدن پادشاه بر چنیزچ بر رنجور و تدبیر کردن در صحت او این مطالبی را ما می‌اندیشیم که معمولاً درباره‌اش توجهی دقتی نشده و اصلا مثلا همینطور رد شدن چه فصول اینو افکارشون متوجه چیزهای خیلی مهمتر بوده مسئله این فیض فیج اقدس و فیج مقدس و نندگان هزارات خمسه و این مطالب خیلی بالا حواسشون ها بوده مطالب خیلی جزئی و پیش افتاده اینا رو توجه تتو ولی خب ما که محرومیم از اون جریانات ما باید پیش پای خود اون رو دقت کنیم چه چی هستید ما خود مسئله عنوان را تأمل میکنیم روش یاد داشته من اینجا در کنار این کتاب نمی شدم از روی این یادداشت داشت می خونم برای تو عناوین منصور در سه دفتر اول مصنوی معمولا کوتاه هست تنها در 5شش مورد از دفتر اول عنوان مفصل چند سطری دیده می شود در دفتر چهارم اناوین منصور به طور محسوس به تفصیل, به تفصیل می جراید و گاهی صورت یک مقاله کوچش به خود می جیرد. ببینید یکی دیگر از نواره های مولانا در همین قدم اول پیش پای ما سبز میشه این روش در دفاتر پنجم و ششوم نیست به کار جرفته میشود اونوانها در شاهنامه بسیار کوتاه هست و تعداد اونها بسیار چم مثلا پادشاهی گواد خبر یوف آف... خبر یافتن فلان از بهرام تورین مولود شیرویه، عنوانهای شاهنامه از این قبیله دیگه جنگ بود خیلی متفاوت صفت تخت تاگدیز در ویس هم همینطور است مثلوی های نظامی هم همین از همین قرار است در اتار هم چنین است جواب گفتن هدهد هد. از راو آوردن سوه هم همین روش را رو دارد سادی در بوستان گاهی عنوان حکایت ها را مشخص می کند مثلا حکایت درد و سیستانی یا گفتار اندر در غیبت و که از وی ساده شود و گاهی به مطلق چلمه حکایت اشتفاع می کند این در بوستانه اما سریگهش در گلستان در گلستان فقط باب ها عنوان دارند هشت باب هشت عنوان داره مثلا باب دوم در اخلاق درویشان باب اول در سیرت پادشاهان عنوان حکایت ها مشخص نیست در گلستان غالب نصر است چتاب نصر کتاب به نصر نوشته میشه بدنه کتاب نصره و شد به کمک مطلب منصور میاد ما در فتوحات ابن عربی هم همین هم را داریم. آقای دکتر جر اشتباه نکنم بدنه این چتاب فوق قلاده ظالبه فوق قلاده بزرگ شاهکار نصره این کتاب به نصر نوشته میشه ولی سلفستا اناوین شعره مولانا درست بر اجسه مولانا کتابی میریسه به شعر اناوین نصره بنیاد کتاب بر شعره و نصر یک وظیفه کمچی برای توضیح مطلب دارد در این دو کتاب یعنی در گلستان و مصنوی نظم و هر دو در ادای مطلب همکاری دارن و حالا اون در آثار دیگر مانند شاهنامه و غیره وظیفه وظیفه عنوان تنها مشخص کردن قسمت هاست. ماننده اینکه ما الان عادت کردیم سرخط میریم جمله رو تمام میکنیم سرخط میریم ما مشخص میکنیم که این مطلب تازه ایستیه عنوان در شاهنامه و اینها مثل اینکه ما الان سرخط میریم سرخط میره شاهنامه فلوسی سرخط میره عنوان همین کار دیگری، فونکسیون دیگری نداره در صورتی که در مصنبی اونوان فونکسیون داره اونوان کار داره میکنه یه کاری، وزیفهی به روح خب این چیز کلی چه خدمت تو در بحث هایی که میاد کاملا روشن خواهد شد که یعنی منظورتیه مخصوصا اونجایی که برسید به اون عراوینه رفصلتری چه مطرحه مسئله بعدی که دلم میخواد مطرح بکنم با بیت سی و پنجمه مصنوی ارتباط داره. بشننوید ای دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال ماست آن، مسله نقد حال. این مسئله نقد حال چه در مثنوی گاهی مولانا این را وصف حال حس به حال نقد وقت ندارم. این عناوین مختلف براش آورده خیلی جالبه و بلحاظ فهم مصنبی خیلی مهمه به به گاهی نقد حال میگه. جه هاشل الله این حکایت نیست این نده حال ما و توست این خوش ببین. ن حال نکده حال ما و توستین خوش ببین درست نگاه بکن. یا میگه لازم آمد بازرفتن زن مقال سوی اون افسانه سوی اون افسان بهره یا میگوید هرچهش افسانه بخواند افسانه است وانچه دیدش نقد خود مردانه است <تصفيق> <تصفيق> یا در اون گذرش میوید لاذرم ما هرچه میگوییم اندر نظم هست لادرم ما هر چه میگوییم اندر نظم هست پی نزد عاشق نقد وقت و نزد آگل داستان او به تشم داستان درش میگاه میکنه، این به تشم نقد وقت نگاه میکنه این بحث نقد، نقد حال، خود حال و نقد وقت و وصف حال هست به حال این محتاجه یک بحث خیلی مفصل است. <تصفح> وصف حال ما را خواهی نخواهی، مجبور میکنه که قدری فش بکنیم درباره، زبان حال تو وصف با زبان جده وصف حال زبانی لازم داره با زبان حال مسئله زبان حال مسئله زبان حال این اصطلاح زبان حال این دوست عزیز محقق ما آقای دکتر فورجوادی کتاب هزار بیشتر هزار سفر هست درباره باره نقده حال نشته زبان حال نشته چوب <تصفح> شده این زبان حال این لسان الحال میگویند عرب حال. و میگویند لسان الحال افسه من لسان القال یا انتگو من لسان گال زبان حال بسله مثلطتر و شیواتر و تر است از زبان گال یا انتگ بیشتر مطلب بیشتر میرسونه زبان حال بیشتر این زمانه ها ظاهران در فارسی ما اول این ظاهران من هیچ تحقیقی ندارم در ایمانه ظاهران اول بار بیشتر ما در روایات خیام چند باری اون این مسئله رو در کارجه کوزه بودم دور دیدم ده هزار کوزه گویا و خموش هر کوزه هر یک به زبان حال با من میگفت هر یک از کوزه ها به زبان حال با من میگفت کو کوزجر کوزه کوزخر و کوزفروش کوز یکی از چیزهای خیام و روایات خ... اصیل خیامانه همین تعمل هست که در این که هر کسی اگر زبان داشتن موجود میگفتند. اگر مملکت را زبان باشدی، حالا چه نداره؟ اگر مملکت را زبان باشدی، سناگوگ شاهد جهان باشدی؟ <تص> این مسئله زبان ها اون تر اون گاز چه با تر حمیدت پهلو در بذات میگم که من حافظه پیرورد چی نمی‌شه در بر آستانه او در فلان شهان نادندی رو دیدیم که بر کنگرش فاختهی بنشسته همی گفت که کو, کو کو کو کو اون فاخته به زبان حال داره صحبت میکنه اون کو, کو به زبان حال میگه کو این زبانه حاله خب پس برجه به اول مصنوی مصنوی با زبانه ها شروع میشه بشناوید نه چون شکایت میکند و جدایی ها حکایت میکند مصنوی با زبانه ها شروع میشه اینم یک نوآوری است. مولانا هر روز از این مرد شجفت شما اجزات تازهی می دید. با زبان حال یه کتابی را شروع می کنید دفتر مصنبی و زبان حال فقط این نیست چه. زبان حال یه وقتی هست چه ببینید نه چه توبه. از زبان چوب وقتی شاعر سخن میگوید این زبان حاله وقتی از زبان نه آدم از زبان آدمی که قادر نیست به سخن گفتن اونم زبان حالی. آقایون مدده ها زبان حاله از جناب علی جناب طفل شش ماهه او زبان نداره اون آقای مدا از زبان او، زبان حال، از زبان او حرف میزنه یه یا روز زبان داره نمیخواد حرف بزنه اوزا احوال طوری نیشه به زبان قال حرف بزنه به زبان حال حرف میزنه اونم زبان حاله خود مولانا به زبان حال داره صحبت میکنه مگه بگدم میای و ببینید شما بشروی نیتون شکایت میکند از زدایی ها حکایت میکند چند نیستان تامره را در نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق هرچسی که دور ماند از اصل خیش بازویت روزگار و اصل خیش من به هر جمعیتی نالان شدم زفت بدحالان و خوشحالان شدم هر هرچسی از زن خود شد یار من از درون من ندست اصرار من سر من از ناله من دور نیست لیک چشم و گوش را آن نور نیست تنز جان و جانز مستور نیست لیک چس را دیده جان دستور نیست این تا اینجا شکایت نه زبانحال نه ولی مولانا میاد در میدان مولانا در اینجا دیگه خودداری نمیتونه بکنه میاد آتش استن بانجنای و نیست باد این زبان حال مولانا است این مولانا هم به زبان حال درستان میگوید آتش استن بانجنای و نیست باد هر این آتش ندارد نیست باد ای حال مولاناست. آتش عشق از چندر نی فتاد جوشش عشق از چندر می فتاد نی حریف هرچی از یاری برید پردههایش پردههای ما درید همچ نی زهری و تریابی چدید دید همچ نی دمساز و مشتاقی چدید، نهی حدیث راه پرخون می کند قصه های عشق مجنون می کند. محرمه این حوش جز بیهوش نیست مرز زبان را مشتری جز گوش نیست این زبان حال مولاناست و شما یک قدم دیگر برمیداریم می و شما بلایجه خواهید رمو که سر تا پا زبان حالی سر تا پا زبان حالی. و این ادعای جذافی نیست چه چسی بکنه خود مولانا میگوید خود مولانا می گوید من اون چه زبان حالی ای دوستان این داستان خود حقیقت نکته حال ماست آن من تفسیل این مسئله رو باید بگذارم برای دفعه آینده که اگر انشاءالله زنده بودم دنبالش رو بگیریم ولی همین اندازه به خدمت شما عرض بکنم چه مولانا نگد را نقد حال نقد حال چه نقد نگ را گاهی در مقابل نگل به کار میبره او مهم خیلی مهمه نقد یا نقد حال نقد حال یه وقت مولونا نقد حال میجه منظورش اینه چه فعلا علا نقد یعنی علا نقد ما فعلا این کار رو بکنم اینه بگیم یه وقت نه نقد نقد در مقابل نقل میگوید در همین فیه مافی، سخن ما همه نقد است و سخنهای دیگران نقل است و این نقل فرع نقد است نقد همچون پای آدمی است و نقل همچون قالب چوبین به ششل قدم آدمی آدمیدم این اینجا میتونم پیدا بکنم اگر باشه چه خیلی گره چندیه صدق نه فشل بله اگر پیدا کردم علامت گذاری کردم دفعه آینده زنده بودم میخونم براتون این ا شعه میکنه این ببین این تقریبا همان است که شمس در اول مقالات میگوید که من از خودم حرفا این حرفایی که میذام من از خودم می گویم این حرفایی تو میگنی میگه حرف بزرگان آذ، حدیث حرف دیگران بسیار خوبن حرف بزرگان تمام به جای خود درسته تو حرفت چ؟ تو چی میزی؟ تو بیا بگو اگر چیزی داری از خودت روی من این حرف ها را میزنم و اگر مولانا که بهتر از من وارده از آیه ها و از حدیث چیزی زد چرد یاد کرد برای شاد گوه خیلی خوبه ولی اصل مطلب من مطلب حرفم اینه کاری ندارم که در اون حدیث چیزی گفته چه موافق حرف من هست یا نه من این هر حرف... تا هم بیا و میجه اجب چیزی از خودت داری بگو این چه نقل میکنیم به درد من نمیخونه مولانا همین را گرفته در اینجا نقل در مقابل نقل چون اون چه او از آیه و حدیث و گال نمدارم هر چه غزالی در فرنزا گفته سرایی در فرنزا رو اینو تمام نقل گوله نقل و مولانا نقد را در برابر نقل به کار میبرد درست همون, همون طوری که شمس میجشه تا نیز از, خ... چیزی از, خ... از خودداری بگو یعنی چیزی اصلی تو داری تا حرفت چیه تو چی میگی خیلی خوب افلا تو اینو گفته عرستو اینو گفته رامدرام تفتازانی اینو گفته فرانتس هم اینو گفته تو حرفت چیه تو داری چی می‌گی اینا که عرض میکنم این اصول این نکات نکات بسیار مهم است در فهم مصنبی مصنبی را اینجوری یعنی یه هم آدمی با یه هم تا آدمی طرفیم هم آدمی که حرف که از و دیگران کاری نداره خیلی خوب بله در اون زمان فرض فرمه که خیلی هم بازار ابن عربی راید بود دیگه ابن عربی هم مرد فوق العاده ده بزرگیه یه آدمی مثل گونوی سعددین گونوی در اونجا در گونیه پسرخانده ای او بود خیلی آدم های مثل این هم عراقی و مثل جندی و فرغانی اینا دوربر او هستند و خیلی هم خب باز میکنند و افتوحات می خونند نمی دارم چتاب های چتاب های بشتر. این کتاب نمی خونه. کاری نداره به او گفته یه من این حرف های من این حرف من اون حرف های دیگران را باید با این محجز داد. و اگر ما میخونه اگه میخونه و بگو بله خیلی خوبه بول. ولی ما هر حرف چی داری از خودت ببین یه چیز اوریجینال یه چیز اصیل در عالم ادبیات ما اول بار یه تاسی سر بلند کرده میگه آقا تو چی نیجی این که حسن ند리고 بودرگون ند리고 گفتن بسیار خوب خیلی خوب اونا روی چشم منزا دارم ولی تو چی میزی حرف تو چیه این ندا این مهمه و شما میبینید چه شمس تبریز با این برخورد مولانا رو عوض کرده و جنب مولانا وایزی بود مثل واعزهای دیگر چه سال پیش از این چه شمس رو ببینه مولونا یه مدرس بود و واعز بود اهلی. مورید داشتم، منبر داشت صحبت میشهد خیلی هم کارش خوب جرفته بود ام ام. یه،, یه چی پیدا شده جرد راه آمد با این با این تبدون که من آمدم طور نزاد بدم از این وزد خب چقدر بخوای نقل بکنی گفتارهای دیگران را نقده تو کو؟ تو هدی خب من امروز مزرد بخوام چه بیشتر از این دلور نرم و اگر زنده بودم گول میدم چه انشالله راجع به زبان حال و گثه حکایت گثه خود گثه چه هست و چطور وقتی میگوییم چه همه مستوی زبان خالی منظور چیه؟ در موردش صحبت می‌کنی؟ ببخشید. می